اللهم صل على فاطمة و أبيها وبنيها والسر المستودع فيها بعد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مبارسه تبل المعصومین بحث سیاه دانه که یک روایت بود داریم همون توضیح میدیم حبت سودا اششونی دانه شفا بخش نگفت شفا اون من کل دا برد از کتاب یوزف نوایمر ترجمه ست حسن ناصری حادی کوهستانی صفحه 166 دو تا روایت آورده و هامون هم می‌خوایم بیان کنیم. تو مطلب 14 فرموده در کتاب مجمع دعوات کبیر صفحه 312 و 313 به نقل از حلیه المتین و از امام صادق علیه السلام درباره طریقه استفاده از سیاه دانه آورده شده که بیست یک دانه سیاه دانه رو تو یک پارچه قرار بدم و یک شب توی آب آشامیدنی سالم نهاده صبح که شد اینو صاف میکنن در بینی راست دو قطره از این آب و در بینی چپ سوراخ بینی چپ یک قطره می ریزن. روز بعد همین کار رو انجام میده. دو قطره در سوراخ بینی راست و یک قطره در سوراخ بینی چپ. روز سه برعکس بر عکس میشه. یک قطره در سوراخ بینی راست و دو قطره در سوراخ بینی چپ از این آب می چکنن. برای همه دردها سودمنده حالا هایی که مربوطه به مغز و احصاب و همچنین روانه حالا چقدر بیماری است برای مغز و احصاب چقدر بیماری است برای روان که تا کنون 400 بیماری روانی شناسایی شده حالا ما اینجا حاشی زدیم در درمان فلجی ها شبه فلجی ها و لمسی ها و سردردهای مزمن میگرنی و غیر میگرنی مفید است اگر سیاه دانه را در روغن کنجد بجوشانیم بیس دقیقه سپس آبش را صاف کنیم سرد که شد با قطر چکون دوازده قطره در سوراخ بینی راست دوازده قطره در سوراخ بینی چپ دوازده قطره در ته حلق مریض آخر زبان ته حلق به چکونیم یکی دو سه دقیقه مریض همجور خوابیده بعد مریض میشونیم مریضی که فلجی آن شبه فلجی داره لمسی داره بعد یک ظرفی زیر بینی و دهنش میگیریم نقداری آب خون و از این پلاسما و این چیزا میاد مخاط و خلط و از این حرف کم کم این لمسی و فلجی مریض از میره هر چند روز یک بار اینو تکرار میکنی کم کم مریض با میشه را میره قدرت خدا اگر سیاه دانه اینا حواشی که برای این کتاب اگر سیاهدانه در روغن کنجد جوشانده و آب آن صاف شود و در هر سوراخ بینی دوازده قطره و ته حلق نیز دوازده قطره بچکانیم سپس مریض را بنشانیم و زیر دهان و بینی او یک ظرفی قرار بدیم و این کار را چندین مرتبه هر چند روز یک بار انجام میدهیم یکی از محسنات استفاده از سیاهدانه ممزوجه بله کلا سه چار بار بیشتر تکرار نمیشه بله هر سه چار روز یک بار چند بار بیشتر تکرار نمیشه مومنان در داخل کشور آقای دکتر کرد افشار این رو, رو روی چندین مریض های لمسی فلجی شبه فلجی عمل کرده و جوابم داده من به صورت علمی توضیح دادم ولی ایشون هم علمی علم نظری هم عملی به صورت کاربردی انجام داد آدم روی مریضای دیگه هم داره انجام میده حالا تا جوابش خبرش اوسن بیارم بعدی دیگه از حجج اسلام مثل حجت الاسلام ابراهیمیان و حضرت خانومش که فوق لیسانس داروایگی امسال میگیره اینها هم از داروی جامعه امام رضا علیه السلام حسن استفاده می به همراه مرزنجوش یا عرق مرزنجوش این هم بسیار خوبه در درمان فلجی ها و لمسی ها خیلی فواهد داران یکیش هم اینه که در چندین مریض جواب داده باز گزارشاتی بیشتر و باز خبراشو برام میارم. تو مرحله کلینیک آزمایشگاه خب اینم یه حاشیه که خدمتتون گفتم روایت پونزده هم. همچنین شخصی نزد امام صادق علیه السلام شکایت کرد که آقا من دشوی کچی کرد ادرار بولم زیاد زیاد میاد به اسطلاح آمیانه حوصلم سر برده ها چقدر ختم قرارگاه صدام بگیرم اصطلاع مردم حضرت فرمود سیاه دانه در موقع خوابیدن بخور چرف میگه آقا چشم حاجی آقا قبلن من سیاه استفاده میکردم برای درد شکمم یعنی دلپیچ گولنج های شکمی برای سردردم برای تبم برای نارحتی های دیگرم مثلا قرغرهای شکمی و ازدیاد گاز میده حضرت سکوت میکنه تقریر معصوم دلالت بر تأییده به قرینه روایاتی که قبلا خوندیم دیگه حضرت جواب این بند خدا نمیده چون کارش درست بوده سکوت میکنه تقریر معصوم همچون قول معصوم و فعل معصوم حجت یعنم که بحثاش تو علم اصول شیع خوندن دیگه میدونن دیگه حتی مومن هم امریکای ها داروگیاهی زد درد مفاصل زدن که از دارچینو و زرچوبه و سیادونه و چند تا نقطه بذار درست شده و خیلی به این دارو گیاییشون ایالات متحده آمریکا مانار میدن و خیلی هم مؤمن برای ازدیاد مایه مفصلی از زرچوبه استفاده میکنن و تبلیغ میکنن زیایی گوید نه به این شیوری شور نه به بی این بینمکی نه اینکه که بعضیا سال در دوازده ماه یه بارم هم زرچوبه نمیخوره نه اینجور که باز این تبلیغ میکنه چون زرچوبه زیاد خوردن حساسیت پوستی شبیه کهیر میاره همانند زنجبیل زیاد روی در مصرفش ریزش سلولی مسانه میاره قابل عرض قرب اما برای کمش که قاشق چای خوری نیم گرم یا یک گرم اشکال نداره برای خانومها ها بهتره زیرا که یک داروی طبیعی پیشگیری از سرطان پایینتنه است در زنان یکی دیگه از دکترای محترم متخصص باز قربون شیعان اسمعه شریع برم مثل حضرت آقای دکتر قلام باهر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر گروه پزشکی مرکز تحقیقات طب اسلامی دانشگاه امام صادق علیه سلام با تحقیقات حضرت آقای محقق پژوهشگر کازم مقدم کتاب داروخانه گیاهی حالا کل این کتاب رو دوباره چک کردم مؤمنون تو دوازه شب طول کشین. واسه همین هم چیز دیگه پیدا میشه خلاصه همون یکی بود که حجت الاسلام فکری پیدا کرده بود داروخانه گیاهی صفحه شست و یک این کتاب چک کردم باز همین یه مورد دیدم خب در صفحه شست و یکش یک داروگیاهی به نام انسولی... انسولینا انسولینا کسانی که بیماری دیابت دارم ولی وابستگی به تزریق انسالین ندارم مثلا گلامین میخورن یا قرص زده قند متفارمین میخورن هم اضافه وزن داره هم کمکاری تختان داره هم فرص کنم خون داره حالا کسانی که قرص مصرف میکنن نه انسالین تزریقی این داروگیای خوبیه و تشکیل شده از چهار چیز یکی برگ گردو یکی تخمشم بلیله یکی سیاهدانه یکی آویشم حالا سیاهدانش مبایست خودمونه پس انسولینا که دارو گیاهیه این دارو مخلوط مناسبی از بهترین گلها و گیاهان دارویی و با استفاده از روشهای کاملا بهداشتی تهیه عمل آوری و بسته بندی شده این داروی گیاهی فاقده هر گونه مواد شیمیایی. این دارو در افرادی که انسولین تزریق می کنند اثر ضعیف دارد و در افراد غیر انسولینی اثر قطعی دارد. خواص و موارد مصرف: پایین آورنده قند خون. مصرف: یک قاشق مرباخوری از پودر را در یک نعلبکی ماست مخلوط کرده هر روز قبل از نهار و شام میل نمایید. یعنی هر دوازده ساعت یک می توان یک وعده در از هم میل کرد میشه هر هشت ساعت یک بار پس از ده دقیقه که این خوردی بعد قضا بخوری نگفتی چرا اینه گفت به خاطر این که مومنا به خاطر این که هر شخصی ولو سالم باشه وقتی غذا که میخورا خونش کم کم میاد بعد از غذا. که قزاش تموم شد قند خونش میاد به 200 بعد پانکراس لوزالمعده فعال میشه انسولین ترشح میکنه کم کم دو ساعت هضم غذا که تموم شد کم کم دوباره قندش برمیگرده سر جای اولش مثلا قند خونم صد بود برمیگرده سر 100 این که هر کسی غذا میخوره بعد از غذا قندش بالا میره این بیماری قند نیست این مطلب فیزیولوژی و ساختاری بدنه بدنه همه همینجوره تصابق فهم بودیم؟ اینم خواستم بگم که وقتی این رو خوردیم این دارو انسولینا رو خوردیم ده دقیقه بعدش مؤمن ها شروع تشوری خوردن اجزا این فرآورده برگ گردو تخم شنبلیله سیاه دانه آبیشن راهنمایی مصرف این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده که قندخونه غیر وابسته به انسولین داری بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید چرا چون مصرف دارو چه شیمیایی چه گیاهی چه هومیوپاتی چه نانوتکنولوژی ها باید زیر نظر متخصص داروشناس باشه خود درمانی غلطه پیش سطحی سطینگری هم قلطتر یعنی اشتباه فاحشتره اگر طی چند روز علائم بیماری شما بهبود نیافت و یا بدتر شد باید پیش متخصص مراجعه کنیم مؤمنات همینطور که در درمان نازایی مطالبی قبلا گفته بودیم که مرد یا زن تختاناش فعال بشه طول عمر تخمکش بالا بره کمرش محکم بشه که دروهای مختلف گفتیم یکی کاسنی بود یکی نخود کشمش بود یکی سیادونه با اصل بود یکی هم خوردن همون هفت برگ کاسنی یا یه قاشق مرحب بخوری پودر کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی تو بحثای اتصالی وصلی الساق چسب به بدن حمایل. اگر کسی براده آبنوس درخت آبنوس یا درختی آبنوس براده مثل خاک اره چوب اگر کسی براده آبنوس رو به مقدار یک مثقال با آب و عسل هر روز بخوره به مدت هفت روز در خانوما به شرطی که خانوم از خون حیز و عادت ماهیانش پاک شده باشه هفت روز بعد از پاکی هر روز به مقدار یک مسقال از برادی آبنوس بخوره بعد از هفت روز اگر شوهر باش سلام علیک خصوصی کنه حامله میشه اینم قابل از خانومایی که تنبلی تختان دارم اینو در کتاب طب اسلامی جلد یک صفحه چلسه حضرت آیت الله مرحوم مصطفی نورانی آورده من خواستم رعایت امانت کنم این کتاب خوندم گفتم مسئلش مسئله خاک ارده چوب میمونه این هم تماشه همچنین مؤمن مرحوم آیت الله مصطفی نورانی در طب اسلامی جلد یک صفحه 141 کتاب زبان خوراکی ها اعجاز خوراکی ها اصرار خوراکی ها دکتر قیاس دین جزائری تو بحث الساق مطلبی دان. میگن گردنبندی حضرت خانوم گردنبندی از چوب ازگیل میوه ازگیل هست گردنبندی از چوب ازگیل درست کنه به گردن آویزان کنه از سقت جنین جلوگیری میکنه این برای کسانی که سخت جنینه مکرر دارن اما اینکه که بخواد کمر خوب بشه و موکم بشه و همون حرفی که قبلا زدیم بهتر جواب میده و او چی بود؟ سیاه دونه با اصل و سیاه دونه با اصل و فیها و فوائد و من ما لا تحصا فوائده های گناگون داره کتاب طب سنتی اصل ترکیبات گیان دارویی با اصل حضرت آقای محقق سجواد سعادتمند صفحه پنجاب, صفحه پنجاب و هفت اگر کسی سردرد به نوع میگرنی دارد نصف قاشق پودر سیاهدانه با نصف قاشق انیسون که بادیان رومیه و سه تیکه قرنفل که میخک داروییه اینها رو با هم کوبیده خوب مخلوط میکنیم با یک لیوان شیر جوشانده و با کمی عسل مخلوط میکنیم یک فنجان از آن را در هنگام سردرد میگرنی میل کنید همچنین گیجگاه ها همچنین گیجگاه ها و شقیقه ها رو با روغن سیاهدانه خالص ماساج بدیم سردرد میگرنی ها بلا فاصله ساکت میشه اون تو ذهن مبارک؟ در صفحه مثلا شست اگر کسی تو تحقیقات و مطالعه و پژوهش اگر دوچار خستگی ذهنی و مغزی شود اینجا از دو راهکار میتونیم استفاده کنیم یکیش تو کتاب گفت یکی راهکار استنشاقی پودر سیاهدانه خالص یعنی همون آن پودرش میکنیم سیاهدانه رو همون آن پودرش میکنیم بعد مثل انفیه شبیه انفیه استنشاق کن دکش داخل بینی خستگی مغزی ذهنی خوب میشه پس گاهی از طریق استنشاقه پودر تازه سیاه دونه منده نباشه اکسیده میشه گاز خردر تولید میکنه باکتریایی قارچی میشه همین آن که پودرش کردی همون لحظه استنشاق کن گرفتیم مومن چی گفتن؟ کشیدن پودر سیاهدانه خالص تازه قیداش من میگم به خاطر این که اشتباه به صورت انفیه دربینی نیست برای رفع خستگی مغز موثر است حالا خارج از کتابش چیه مؤمنا خستگی بر سه نوعه گای مؤمنا خستگی خستگی جنسیه باید غذای تازه بخوری و قلنجان زیر زبون نگه داری و اسانه دوتا تا هویج زرد، جزر یا یک لیوان آب زردک بخوری. یه بار خستگی نه این در مردو. در زنان کاسنی بخورن و چای رازیانه. یه بار دیگه خستگی، خستگیم عزلانیه. کم میاره تو انجام کارهای فیزیکی نشست و برخواست و را رفتن و کتاب دست گرفتن و نوشتن و هرکیز هر شغل شریفی داره. اینجا قندخون ازالت کم شده. شیره خورما روزی دو قاشق پلو خوری سو باشه یا هفت عدد خورما بعد از نهار بعد از شام درمان خستگی ازالانی. و کارایی یا ناکار آمدی ازالات ارادیت خوب میشه یعنی بیماری دیستروفی که ضعف ازالات ارادیه خوب میشه حتی نقش به کمک درمان داره تو بحث بیماری میست میگرام یعنی ضعف عضلات کل بدن یه بار دیگه مؤمنان خستگی خستگی ذهنیه خستگی خستگی ذهنیه تو بحث استنشاقی چی گفتم؟ پودر تازه خالص سیاه دونه اما تو خوراکی چیه؟ اگر قند خونت بالا نیست اگر چربیای مزر خونت بالا نیست و اگر آنزیم های کبدیت بالا نیست اگر این ستا بالا نیست در درمان خوراکی خستگی جنسی یک لیوان شیر تازه با موز با موز رسیده زیرا که خستگی ذهنی قالبن به خاطر کمبود لزین مغزه حالا فرض کن خانواده چار نفرین همه تون هم اهل تحقیق و پجویشو دست دو تا موز رسیده از کجا فهمی رسیده پوستش زرد پرنگ پر روش نقطه های سیاه دو عدد موز رسیده میندازی تو مخلوت کن فحانه چار لیوان شیر تازه گاب هم میریزی خوب هم بخوره نفر یک لیوان شیر موز بخورن از هشت صبح تا دوازه ظهر شما سر کلاس باش دست بده کتابخونه کتاب باش تحقیقات پژهش باش اصلا خسته نمیشی حاصله سر نمیره دست خونده یا تمون چی شد؟ برای خستگی ذهنی و مغزی بهترین داروی خوراکی یه لیوان شیر موز طبیعیه نه اسانس موز بزنن شیمیایی قاشق چایخوری دو تا مخلوط کن درست کن قابل این آب میوه فروشی یا قابل ازین بزرگوارا نه اینکه مامنا قاطیش قند و شکر کنین نه موز رسیده طبیعی نارس نباشه شیر تازه گام کم چرد. اینا مخلوط با هم نفری یک لیوان میخوان صبح تازه قبرق خستگی ذهنیت هم خوب میشه. این هم حاشیه بود که اون کتاب زدیم. <تصفيق> مطلب دیگه مؤمنا تو بحث بیماری های چشم. مثلا اگر کسی چشم درد دارد حدقی چشمش درد میکن. یا پشت کره چشمش درد میکنه اما سینوساش درد نداره شقیقهاش هم درد نداره درد حدقی چشم چشم درد داره چند مودله مخلوط چند قطره روغن سیاهدانه خالص یعنی سیاهدانه رو تو روغن زیتون خالص بجیشونی آبش هم صاف کنی حالا پل که چشم میدی پایین تو ساک چش دو سه قطره میچه یه قطره کافیه مومنم ازباب شستشوی محوریه. مخلوط چند قطره روغن سیاه دونه خالص قیداش بزنید ها نداره تو کتاب یک لیوان شیر و کمی اصل را مخلوط ای ستارا قبل از خواب بنوشند همچنین قبل از خواب همچنین قبل از خواب دو طرف گیجگاه ها و ابروها رو ماساژ بدن با روغن سیاهدانه خالص برای کسانی که مبتلا به درد چشم هستن مفید است اگر کسی مؤمنا نفخ معده داره و یا های شکمی و روده‌ای داره هم برای تقویت معده هم برای درمان نفخ شدید یا ازدیاد گاز میده هم برای درمان و پیشگیری از قرقره های شکمی و روده ای چی خوبه؟ قبلا روایاتش خوندم حالا از این کتاب میخوام متنشون مخلوط سیاه سیاهدانه با اصل صفحه 68 تو بحث تب سنتی اصل خواستم بگم روایات اهل بیت همه اینا رو فرمودن و بیشترم فرمودن اگر کسی اسهال مداوم داره به نوع اسهال مزمن یا حاد مخلوط یک قاشق غذاخوری پودر سیاهدانه نصف استکان عصاره ترتیزک شاهی جرجیر الرشاد عربی قدیمه جد و نصف قاشق غذاخوری عسل و پس از غذا در سه وعده میل نمایم با پایان یافتن اصحال شخص ای دارو هم قط میشه پس مخلوط یک قاشق پلوخوری پودر سیاه دونه نصف استکان اصاره تر تیزک و نصف قاشق قضا خوریم. هم از سر هم بزن مریضی که شکم روشی دائمی داره میخوره تا وقتی که خوب بشه یک استثناء است اگر کسی مشکل سندرم روده تحریک پذیر دارد یعنی مشکل انتهای روده کوچک دارد اینجا دو جوره یا همیشه این مریض یوبوست داره به نوع یبوست مزمن یا این مریض همیشه شکم روش داره آبکی کار میکنه مفوعش. در صورت دوم که سندرم روده تحریک پذیر به نوع دومه داروش چه مومنا سنجت قبعی داروش مؤمناتیه ها سنجده از چهار عدد تا چهارده عدد میتونه به بخوره امیر علی علیه السلام میفرماید پوست سنجد برای پوست بدن گوشتش برای گوشت بدن هستشه که پود کنی برای استخون بدن خوبه از حیث اسکلت بدن از حیث پیشگیری و درمان بیماری استعپراز یا پوکی استخوان. از حیث پیشگیری و همچنین کمک به درمان آرتروز سایدگی مفصل، زیرا که از سنین بالا دیگه تراکم سلولای استخوانی کم میشه و اگر شخص کلیسیان به بدنش کم باشه گردش خونا سطح از سطح استخونا کلیسیان برمیداره و پوکی سطح استخوان ها پیشرفته تر میشه حالا شما سیاه دونه با اصل تو جیره قضایید باشه فرمایش امیر پودر سنجد با شیر یا به تنهایی تو جیره قضایی باشه فرمایش امام صادق تو شیرها بهترین شیر شیر تازه گاوه این عمل کن صابونه بخور نوجوان جوان هستی دو لیوان تا سه لیوان تو بیست چه جوان هستی دو لیوان میان سال هستی یک لیوان کهنسال هستی دو لیوان تا دوچاره پوکی استخوان به نوع پیشرفته و همچنین دوچاره آرتروزهای مفصلا نشین اینا خارج از کتاب حواشی که زدیم مومنا دو چیز همیشه به انسان لطمه میزنه دو چیز همیشه به انسان لطمه میزنه یکی دوست نادان دوست نادان یکیش دشمن آگاه و داناس که با توجه شرارت میکنه و وجود شما رو در صحنه اجتماعی در داخل و خارج کشور طاقت نداره پس به دشمن محارب نباید اعتماد کنی اگر اعتماد کنی پا تو آیه قرآن گذاشتی چه شیه باشی چه سنی؟ چه انقلابی چه ضد انقلابی همه باید عمل کنند به محکمات قرآن مزید پس به دشمن شرور که مدیریت شرارت داره نباید تکیه کنی نباید اعتماد کنی چون یا ساده لوحی یا هرزه هر دوش بده چون انسان دنیا و آخرتش زایه میشه و امکانات موجودش رو هم از دست میده پس دو چیز انسانو زایه یکی دشمن آگاه اگه توجه بهش نکنی مراقبت و موازبت از خود و افراد نداشته باشی دوم دوست نادان دوست نادان به خاطر بیعقلیش به جای اینکه به شما کند شر رسانی می شبیه منافق میشه اونیکه عیبه باید حذفش کنی هی عیب تو ریز نشون میده که به عیب توجه نکنی و نقصتو برطرف نکنی اگر خوبی داری هی خوبی تو کوچیک جلوه میده که همیشه در زمره بدان باشی و باقی بمانی و خوب و خوبی از سر نذره و جزء انسان های خوب شریف که احیاگر اصول انسانی و اصول اسلامی و اصول ایمانی هستن جزب خوبا نباشی پس باید از منافق در حذر بود و از نظر تهذیم نفس و اخلاق عملی مدیریت برخیشتن داشت تا بتونی مدیریت بر دیگران رو به نحو احسن ایجاد کن اینایی که گفتم موسیقی چی گفتم این هم توضیح دارم به خاطر اینکه اگر آدم خنگ باشه یا احمق باشه یا حب دنیا بگیرتش یا آلت دست استعمار بشه و به دشمن اعتماد کنه ذریه رسول الله را به اسم دین شهید میکنه همچون امام حسن مشتبه همچون امام حسین علیه السلام رو به شهادت میرسون ریحانت های دو دست گل پیغمبر رو به شهادت میست مسلمون قفلت زدن جاده صافکون و اعمالگره دیکته یهود نجات پرست میشه نسل نهم از امام حسین که مولا صاحب زمانه همین چنینه اللهم <تصفيق> صانعه اگر در آخر زمان مسلمونا توجه نکنند به وظیفشون و توجه نکنن به دشمنان واقعیشون در صدده به شهادت رساندن امام زمان در میان معصومی که پاره تن رسول الله هم. میوه دل رسول الله هم. همشون نور واحدن هم. همشون شون کلامشون حقه به هر عراجیفی از غرب و شرق پاسخ مثبت میده حاضر نیست کلام حق معصوم رو بشنوه تا چه برزه به ترتیب اصل اینجا لب معصوم ترک خورده تو گودی قتلگاه هست یک نفر با وجدان پیدا نمیشه که به این لب تشنه آب بده کبدش از تشنگی می سوزن. کسی رعایت حقوق امام مبین امام حسین نمیکنه. کنه رعایت حق انسانی علی اصغر نمی کنه رعایت حق یتیم حضرت وقیین که یا دختر امام حسینه یا نوه امام حسینه و دختر علی اکبرین رعایت حق یتیم نمی کنه. حالا با هر دین و مذهبی که باشه اینا رو یک کم توضیح دادم پس آشنای باید با دشمن بود و با دشمن مبارزه کرد نه بی تفاوت آشنای باید با خودی بود مخصوصا اونهایی که ما رو بسیار دوست دارن و از پدر و مادر ما رو بیشتر دوست دارن و اون معصوم علیه السلامه چقدر آدم باید بیرگه، بیغیرته، بیشرف و احمق باشه؟ که کسانی که از پدر و مادر ما رو بیشتر دوست دارن همچون چهارده معصوم بیاد از اینام قافل بشه کبد معصومت تشنگی به سوزه بهش بر نخوره حالا مباعث ما تو بحث سیاهدانه تو بحث کبد التهابات کبد به خاطر ظلم به نفس تا حالا چی مثال ظلم به غیر بود آب و آشامیدنی سالم از حقوق انسانیه پس ها فهم باید رسیدگی میکردن که رسیدگی نکرد حالا تو بحث هر کسی که کبد داره جیگرسی ها داره هپا به قول انگلیسی ها هپا حالا اگر کبد ملتهب شد هپاتیت یا اگر کبد چرب شد یا ناراحتی های دیگر داشت میتونید شما از این سه دارو که یک بخشش سیاه دونه هست استفاده کنیم در ناراحتی ها و التهابهای های کبدی یک مقداری پودر سیاه دانه با گیاه صبر زرد با اصل مخلوط کرده و هر روز صبح ناشتا به مدت هفت روز هر بار یک قاشق مربخوری میل شود دوم، روغن سیاهدانه در حال جوش که با قنچه برگهای بید، اون برگهای کوچک درخت بید مخلوط کرده و پیش از خواب یک قاشق مرب بخوری به مدت یک هفته میل شود روزی یک بار قبل خواب شب مطلب سوم یک استکان سیاهدانه در یک لیتر آب جوشانده چهار تا 5 لیوان آب جوشانده با اصل شیرین کرده و به مدت یک هفته صبح ناشتا مقداری از این مایع مخلوط را بنوشید. ناراحتی ها و التهابات کبدی خوب میشه. رحسای المره المرار که گاهی به خاطر التهابات شدید کبدی ها ناهنجاری های روانی میاره که بحثش قبلا تو بحث مره و مرار مطرح کردن اگر کسی دوست دارد کبد خودش رو قوی کنه جرعتش زیاد باشه دل شیر داشته باشه از سختی روزگار و از هجمه دشمنان نترسه تو بحث اعتقادی اخلاقی و حکمتی ذریب اطاعت و طبعیتت رو از امام معصوم بالا ببر عمل صالح توعمه با اخلاص باشه این چندتا رو رعایت کنی یا شیر داری قرب شرق دست به دست هم بدن ها. شما ننیم تونن بشکنن هر کدوم از شما در مقابله با هزار نفر از اونا توان داری توان واقعی ها نه قوه توان واقعی که به منصه زور میرسه و حرکت و جنبشش هم شتاب داره نه حرکت ساده با بازده و بندمان مفید تو بحث کبد هر کسی و جگر های هر کسی که بخواد کبدش رو تقویت کنه یک کیلوگرم میوه انار را کیلوگرم میوه انجیر را در دو لیتر آب جوشانیده و سپس یک قاشق غذاخوری عسل مثلا عسل آویشن نعنا و هفت قطره روغن سیاه‌دانه هفت قطره روغن سیاهدانه به آن اضافه نموده مخلوط کنید صبح و شب به مدت یک هفته میل کنید حتی کسی یا کسانی که تنبلی کبد دارند درمان میشه این در درمان تنبلی کبه اگر کسی می سنگ کلیه نگیرد و یا سنگ کلیه که دارد خورد شود حتی اگر سنگ های کلیه و شن کلیهش اوگزالاتی نبوده بلکه سیلیسی بوده سیاه رنگ دارای نقطه های سفید اینجا خوردن سیاهدانه هر روز به مقدار هفت الى ده گرم یعنی دو قاشق چای خوری یا یک قاشق و نصفی خوردن سیاهدانه هر روز هفت الى ده گرم که با اصل بخوری و همچنین خوردن اصل و زعفران با هم بسیار مفیده هم پیشگیری از سنگ کلیه هم درمان و خورد کردن سنگ کلیه گرفتین چی گفتم اون اصل زعفران که برای پیشگیری درمان کبد چربم خوب بود که قبلنا بحثش شد در هپاتولوژی یا کبدشناسی مطرح کردیم اگر کسی ادرارش بولش اگر به سختی میاد اسر سختی در دفع ادرار دارد مقداری سیاهدانه را جوشانده با اصل شیرین نموده یک لیوان صبح و یک لیوان شب به صورت ولرم باشه میل نمایید داغ نباشه سرد یخ زده هم نباشه اللهم صانع العالم محمد عالم محمد